امام حسین 21 سالشون بوده و بعد از 21 سال سی و 38 سال دیگر زندگی کرده و در تمام این مدت سی و 38 سال به شدت بر پدرش میگریست کسانی که میگویند گریه بر امام حسین غلطه چون امام حسین به خدا رسیده و شهادت رسیده ما باید پایکوبی کنیم شاد باشیم برقصیم مانند مولوی چون به خدا رسیده و این از کم معرفتی ماست که فکر میکنیم بر امام باید گریست باید این آقایون گفتش که دست مریضات شما الحمدلله علا بیتگارتون به جایی رسیده که از سید و ساجدین و زین العابدین معرفتتون بیشتر شدیم سی هشت سال زندگی کرد در یعنی از این سی هشت سال گریهی بر پدرش کرد که او رو جزو شمردند آب میدید گریه میکرد حتی قضا میاموردن میفرمود پدر من رو گشت تشت نکشته غوسفندی رو سر میبردیدند زار زار میگریست میفرمود غوسفندی را کشتند آوشته جمع شدن اهل بیت امام سجاد انقدر گریه می کرد که میترسیدند بر امام و مزاج امام جابر بن عبدالله انصاری از اصحاب پیغمبر باقی مونده پیر شده محاسن سپید او رو پیش امام سجاد واسطه قرار دادن که تو برو یه چیزی به آقا بگو این همه به خودشون فشار نیاورن در کردن اومد خدمت هرزت ارز کرد یا آه اهل بیدتون از خوابتون میترسن بر مزاج مبارکتون تقاضا دارن اگر میشه یه مقداری گریز در وای بر تو جا بر این قرآنه که میگوید یعقوب پسرش تو که بردن خبر داشت که زنده است میدن است کشته نشده چون وقتی پیراهنش را آوردن گفتن گرد خورده ناشی بودن پیراهن سالم بود اتنش در آورده بودن خون ریخته بودن یعقو گفت عجب گرگی که بچه منو پاره پاره کرده ولی پیراهنش حتی یک سر سوزن دار نشده فهمید پیغمبر خداست که دروغ میگوید میدانست پسرش سنده است از فراغ پسرش انقدر گریه کرد که قرآن میگوید و بیزد اینا هومنالحوزن چشمهاش سفید شد کور شد از بس گریه کرد او پیغمبر خدا بود پسرش سالم بود انقدر گریه کرد من که خودم دیدم در یک نیمه روز پدرم میان دو نهر آب لبتش نکشتن هم دیدم هفته نفر از جوانانی که در عالم مانند اونها نبوده همه این گلها رو پرپر پر کردن من گریه نکنم